طلاق فرد مجرد طلاق مجرد آیا واقعی می شود یا نه حدیث داریم که لا طلاق قبل النکاح قبل از نکاح طلاق داریم حالا در نزد احناف طلاق مجرد واقعی می شود بعضی اعتراض می کنند که پس احناف مخالف حدیث هستند امام عینی اللهم عینی و الله خیلی اصوانی غاز بی کنید کجا حضرت امام و گفتن قبل از نکاح طلاق واقع میشه این جوری که نبیفتن هیچ کس نمیگه قبل از نکاح طلاق اون طلاق مامینی واقع میشه بعد از نکاح اصلا مجردی میگوید که به این صورت الفاظ یک مجرد اگر مجرد گفت که زنم طلاق زن ندارد هیچنو طلاقی واقع نمیشه مجرد گفت که اگر من زن گرفتم زنم طلاق در این سورت اگر زن گرفت طلاق این طلاق که واقع میشه بعد نکاح پس قابل نکاه نشد اون طلاق قابل نکاح اینه اما اینکه اگر من زن گرفتم طلاق تا زن طلاق نیست به مهزی گرف نکاح شد بعد طلاق میشه بصیت طلاق بعد نکاح واقع شد قبل از نکاح که این واقع نشود این است و همین قول را امام مالک رحمه الله داره امام مالک میگه اگر خانمی را مشخص کر. کرد اگر, اگر, اگر, اگر, اگر من فلان را کردم اگر عرض ها اگر به فلانو عقد کردم طلاق قبل از اینکه به این جمله تکرار اگر من فلانی را نکاح کردم طلاق آه. آه. طلاق. طلاق زنید. زنید. بعد نکاح طلاق حالا طلاق نمی شون حالا که زن چی دیدی هیچی نه منظوری شو که شخص معین معین فرض شخص آه. شخص معین و نسبت طلاق بعد از نکاح پس هیچ از خب بعد از اگر فلانی را نکاح کردم طلاق جمله شرطیه هست. فلانی رو کردم طلاق فلانی که اغد نکار طلاق نیست پیمازی اغد کر پا نکار این طلاق باز نکار میشه یا از فلان اگر دنگری فن طلاق بعد نجای طلاق میگفتی کار چیه این چند تا رائحل داره حل اول این است که اگر به این الفاظ گفتی بود اگر فلانی را من اغد کردم طلاق هست بعد از نکار کرد یک طلاق واقع میشه با همون طلاق باین با میشه خانم میره اما رایشه باید دوبار نکاح کنه اگر دوباره نکاحش کرد، نکاح دو دوتا طلاق میمانه این رجوع نداره اینجا. چون طلاق قبل از نکاح چون طلاق قبل از خلوت رجوع نداره پس اگر گو فلانیر اگر من طلاق نکاح کردم طلاق باشه یا از فلان قوم اگر خون طلاق باشه یا هر دنی من گرفتن طلاق واشه اگر به این الفاظ طلاق خورد بعد از گرفتن یک طلاق واقع می شود بعد همون نامزد را خبر کنم من چنین دست خوردم آیا اجازه هست تو را دوبار نکاح کنم ای نه اگر اجازه داد بعد نکاح می کند و دو طلاق دیگر میماند. اما اگر با این الفاظ طلاق داده اگر من از هر قامی زنگ گرفتم یا هر جا زنگ گرفتم اگر فلانی نکاح کردم طلاق است طلاق است طلاق هست سه مرتبه جدا جدا گفت بازم یک طلاق واقعی میشود و این راه اما اگر اینجوری گفت که من اگر زن گرفتم یا هر جا زن گرفتم یا فلانی را گرفتم سه طلاق هست این سه طلاق میشه راه این خانو راه نداره بعد خانم دیگر نکاح کناد این هم شد یک مسئله طلاق افراد مجرد